بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد لقد اقمت مروري خاتم بعد تدوين علم بحث اغاز تدوين علم الحديث في تاريخ رد النخبه بحث فضيله الحديث بحث ثمرات شناخت علم حدیث و فهمیدن علم حدیث بعد از اون قرار بر این بود که ما به طور خلاصه مباحث حدیثی را تک به تک با مثال جلو بریم لیکن مسلحت بر, این بر, بر اینه که شاید مسلحت اون چی که ما می دونیم بر اینه که ما یک کتابی از کتاب های عیمه قدیم اوم چیزی که انتخاب карیم کتاب امام ذهبی مل مقدمه المقزهس فیلکه سب جلدیس مختصر مستصر امام ذهبی امام ذهبی کتاب مقدمه مباحث حدیثی مختلفای حدیثن از کتاب کفایه که مختصر علوم حدیث امام ابن هست خلاصه کرده پس مقدمه یا مقدمه منقزه Such O fitz as از کتاب Aboha Chui Tummanτο Nerturv, Shalv, As planned for all this nihid and but this book, we launched the book but we are going to cover کتاب book. I'm having a skills coming from this book. I will just compliment this book. Here we are going, by Radio- derivar of this نشأت علم مصطلح حدیث و این علم حدیثی‌تون علم مصطلح حدیثی که داریم در چه قرنی و چطور تدوین شده و نوشته شده و علما جمع‌آوریش کردند. شکی درش نیست که خود مبدأ قواعد علوم حدیثی یا مصطلح حدیث در همون قرن اول بوده مثل اون چیزی که امام مسلم در مقدمه کتاب صحیهش نقل می‌کنه. از امام ابن ke yegi az lamma waqa'at al fitna qalu thammuna rijalana ke fitna qad shod ke gofti fitna chi fitna yudi bas shod ya bas nashod bas shodana bas cham boz mikunim ina ma qad waqa'at al fitna manzur chi fitna yi hast ke muhim ma bad donim yegi vaqte ke fitna ofta تابعیم گفتن که باید الان اثانیت و رجال مشخص بشه قالو لن قالو سمو لن رجال حالا مستشریقین اومدن از این گفته بسیری تو استفاده کرده این گفته را تحریفش کردن گفتن که این فتنه ای که امن سیری در این اثر روایت می کنه در این گفتش ر... م... روایت می کنه مقصودش این است که این فتنه فتنه یه زمان عمرم عزیزه وقتی که چه همون و صفمان هم و چه و زر اینا اومدن این فتنه که شد در بعد از عمرم دفت عزیز گفتن که الان رجالتون رو با ایمان مشخص بکنید چرا اینچین فتنه هایی را مستشقیقین و همچینین مخالف این اهل سنت اومدن روش تکیه کردن و گفتن که این همون فتنه هست و آیا حرفشون درستی آنه خیلی حرفشون درسته. اینا خواستن این فتنه را به تخیر بندازن نوز سال بعد از رسول الله چون حکومت عبدالله عبدالعبدالدی از سال نوز و نوه تا صدیه یک بوده دو سال یا سه سال میخوان این قضیه را به تخیر بندازن وقتی که دیگه اصحاب نیستن وقتی که اصحاب فوج فوج شدن دیگه واسطه چی واقعی نمونده خب میخوان این فتنه را به تخیر بندازن بگن که اون فتنه هست بعد از اون فتنه حالا در نهایت قرن اول قرن دومه میخوان بگن که این همون فتنه هست تا اینکه بگن که چیز قبل از اون محدثین و همچنین اهل سنت کتابی نداشتن و مرجعی نداشتن و دنبال اینم نبودن که ناقلین کی هستن و کی بودن این ناقلین و این اشخاصی که نفر کردن مگر نگاه بکنیم این فتنهی که ابن سیرین سه خالا روایت که اومده جنبندی بخوام ببندیم این فتنهی که ابن سیرین پیرامونش صحبت میکنه فتنه مقتل عثمانه رضی الله وحد وقتی که عثمان رضی الله وحد فوت شدن وقتی کشته شدن به شهادت رسیدن دیدن از حاق گفتن سمولنا رجع لکن گفتن که برای ما راویانتون نقل بکنی چرا این اینچین چی قاعده شد؟ ما اگر در اصل قدیه فتنی مقتل عثمان نگاه بکنیم به شاده دستن عثمان نگاه بکنیم ببینیم چی شده مگر که اینچین قاعده و علموی حدیث بوداشتن تذبیر در علم حدیث تذبیر در گفته ها از زمان عثمان پررنگ شد وقتی که عبدالله عبدالله 19 یهودی اومد با اون اقابیلش و گفته هاش از مدیره نانده شد بعد رفت به مصر اشخاص رو تحریک کرد در دین عثمان رضی الله عنه تا اینکه اون اشخاص حالا 600 تا نفر یا بیشتر نفر بیشتر بودن اومدن به مدینه در نزد عثمان رضی الله عنه اومدن که بازجویی بکنن بازخواست بکنن عثمان رضی الله عنه و من گفتم انا عثمان تو که این کارو کردی فلان اشخاص فرستادی از خود به خود چرا این کارو کردی چرا فلان کردی اومدن اتهاماتشون وارد کردن تک تک این اتحامات عثمان رضی اللہ عنہ پاسخ دادند جواب دادن خب الان عبدالله عبدالله عبدالله عیدی باشه کس برخورد کرد اومده بود این شسن را تحریک کرده بود که عثمان رو بخشد یک دسیسه ای ساخت و یک فتنه ای را ساخت با نوشتن یک نام اونا را تحریک کرد که دوباره بر بگد عثمان را به شهدت پر اصلا کرد؟ وقتی که اون اشخاص داشتن برمیگشتن که به مصر بر می‌گردن عبدالله بن مسبه یهودی یک نامه رو پیدا رو دید با مهر عثمان که عثمان رضی الله عنه نوشته مثلا به مصر، والی مصر والی مدی والی مصر میشه چند نفر میان تک تک تک تک, تک اونها گردن‌هاشون رو خط بکون دستورشون رو فنام بکون که اینها فلان و فلانن خب این اشخاص بهشون بر خورد عثمان مهرش هم تا تذویر نکونید مهر عثمان روشن شد وقتی که دیدن که عثمان این نامه را نوشته با این وجود که اونها حرف اسمان را قبول کردن با, با این که اونها برگشتنن دفتشون اونها تحریک شدن برگشتن به مدینه دوباره و اسمان را به شهادت رسوندن پس این شفهی ای بود با یک دروغ تونستن یک خلیفه را بکشن را به شهادت برسوند پس میشه با خفنه ها با تذویر ها آدم ها را پشت با تحریف عقایدی یا اولب کردن عقیده مسلمونا و وراثتن احادیث موضوع و دروغین و بچشتدن احادیث حالا این دروغ بر آسمان بود چه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم این فتنه بود نه موقعه الفتنه این فتنه بود که رخ داد قالوا سمولن رجاله و الان رجالتون قاویانتون ناقلینتون رو به ин кунту садики ин кунту садики кул хатир бурхонатун далилатун мадракату Роббики агар садиқ ва расиқ васид хоб такин муқаддимия таҳққиқ муқаддимия пайгири ва баррафия таҳволи иснод муқаддима чун як аз маваҳид мусаллаҳи ҳадис پس این مقدمه در زمان ااتاب این در زمان خود اصحاب از اون مجموعین در هم زمان تحت سبوت در رو بایدات بحخت بررفی اسناد آغاز شد چون سمونونه نام جااککن در بحثگیری اسناده استادات منقطع باشه اسنااد باز مسلل باشه این مو باید همش حریث هست وقتی که میگییم سموناجلاک و مینی چی یعنی باز سر متفر باشه رابی را با مشخص بکنه مشخص نکنی میشه منقاع میشه مورسل میشه معذل میشه تا ما وخص دی دیگر حیفی بس كتاب كتاب كتاب اكرم اكرم كتاب كتاب این منقدم ها در همون طررن اولند بوده تا متفانه خوب به عجد تحت تعطیل یک فکری قرار گرفتن مثل عاکرم زی آممرین در کتاب البوس خود تمتون مشاخص عشان کتاب کلی بزرگی یک از کتابی که طلب توصیه میشه بکنه ااکرم اطرم بیارم آمری تعلیف کتاب مععلمف کتاب اللبریخدم ب مشاه خیر کتاب بزرگی ب در اینجا خوش میله و این فتنه رو برمیگردن به فتنه زمان عمران عبدالعزیز. خب تا اینکه که امام مالک میاد کتاب محتش را می نویسه، امام بخاری میاد کتاب تاریخ کبیرش رو می نویسه و امام مسلم و امام ترمزی کتاب عدلش رو می نویسه. ما در نگاه بکنیم این کتاب ها که هست، کتاب های امام مسلم، کتاب های بخاری، میبینیم که مسائل حدیثی درش بیان شده مسائل مصطلح حدیثی خوصاً کتاب علیل امام ترمزی خوصاً مقدمی صحیح مسلم که بحث حدیث را میکنه و بحث سال و بحث این مواهز باز میکنه این کتاب ها خودش نشانگر نشانگر حدین علم مصطلح حدیث در قرن دوم خصوصاً از قبل این امه که ذکر شد سمو می‌بینیم امام بخاری در تاریخ کبیر میاد مثلا احادیث رو نقل می‌کنه میگه این حدیث این اشکالش این اشکالش فلانه ولی خب فراکنده می‌بینیم در یک کتاب تاریخی که مثلا 10 20 جلده میاد مثلا فراکنده یک جا حدیث رو به علت نمی‌دونه فلان تذیه می‌کنه به علت ارسال جای به علت اذان جای دیگه به علت جای دیگه به علت فدی می‌بینیم که چاهایی حدیث رو نقل می‌کنه خب این مباحث حدیثی فراکنده مصطفل حدیثی فراکنده نیاز داشت که تتبین بشه در یک کتاب در یک کتاب مح... مستخل که هنوز تتبین نشده هنوز در یک کتاب جمع نشده امام الرام ارموزی امام رام ارموزی میاد در کتاب محدد الفاصل میاد این مباحث, مباحث حدیثی فراکنده مباحث مصطفل حدیثی فراکنده را جمع بری میکنه در این کتاب مینی میسد المحدد الفاصل. تعلیف امام رام هرموزی پس این کتاب اولین کتاب مصطلح حدیثی که مباحث حدیثی را درشت جمع بری کرد خب بعد از اون ام میاد امام خطیب بغدادی امام رام هرموزی در سال 60 حجری قمری خود کرده و امام خطیب بغدادی در 405 فکر سنوگه اشتباه کنه امام خطیب بغدادی میاد این مباحث را به طور مفصل ولی مجزا جمع بری میکنه به طور مفصل مجزا یعنی مثلا میاد در بحث مرسل تمام مباحث مرسال را به طور مفصل دک میکنه میاد در آداب محدث میاد یک جزء کامل می نویسه در آداب محدث در هر مبحث حدیثی میاد یک کتاب مستقل می نویسه خطیب امام خطیر برقیدی برم تا اینکه بعد از اون علمای دیگر یعنی میاد امام حاکم میاد امام فلان میاد ایمه زیاد هست چه می نویزن امام آمین السلام در کتاب معرفتش علوم حدیث یا در کتاب علوم حدیثش میاد این اجزا را در یک کتاب با تفصیل بیان بکنه پس اول رامان هرموزی که جمع آوری کرد ولی که مفصل نبود جمعش کرد ولی تفصیلش نکرد و کاملش نکرد میاد خطی ازدابندیش میکنه تکتکش میکنه ولی مفصلش امام امن میاد دوباره همه اینها را جمع میکنه و به طور مفصل در کتاب مارفت همون حدیث جا میده اجزاء جمععترین کتاب هایی که در علم حدیث نوشته شده، علم مصطلح حدیث، همین کتاب معرفت علوم حدیثه که ده ها مختصر درباره اش نوشته شده. مثلا ببینید امام ابن کثیر میاد مختصر علوم را می که می ناد علامه شافعی کتاب بواثق حدیث شرحش میده. امام نبوی میاد تقریبو نبویش رو می مختصر علوم حدیث که بعد امام سیوتیم بگو شرحش بیده در کتاب تهدریب الرائی في شرح قریب النواوی مختصر بعد شرح امام ابن الدخیق مياد کتاب شیر میویدت مياد کتاب را میویدت در اختصار علوم حدیث که الان این که این که که که که که که маде он он гуфт он ки он китоби ке мухтасарш карде он мухтасари ки имам इбн हсиш доште ва бахобе улуме хадис он китобро бодам мухтасарш карде мутари хуласаи мавахиди хадисиро хаз карде ва ба навахи мусали хадисо дарш ҷой доде ва баъд аз мавахидро бодаш карде мисли мавахиди жаф таъдид می‌دونید وقت خود ترجمه امام ذهبی کی بوده در چه سالی به دنیا آمده و اخیراش چه بوده مهمه که قبل از اینکه یک مسندی آغاز بشه شرح حال بشه اون مؤلف کتاب بشه امام ذهبی محمد ابن احمد ابن عثمان ابن القائمه ترکمان الذهبی او ابن الذه الدمشقی امام ذهبی این کلمه ذهبی یا لقبه که زهبی گرفته بخاطر اینی که شغل پلرش تلاف سازی و کار طلا بوده. بخاطر همین به پدرش میگفتن زهبی و به خودش میگفتن ابن زهبی. لیکن چون زهبی خود و امام زهبی بعد از پدرش میاد کار پدرش رو ادامه بده بخاطر به بخاطر خودش هم زهبی میگه. گفتیم اصلش ترکمانیه. از ترکمنه ترکیه. خود امام ذهبی متولد دمشه. متولد دمشه که در سال 673 به دنیا آمدن و 748 فوج شدن. در سال 603 به دنیا آمدن و 748 هجری زمری هم فوج شدن. امام زهوی نگاه بکنید سبحانالله این جایی تحجبه امام زهوی تعداد شیوخش هزار و سیسر نفر هست هزار و سیسر نفر شیخ داشت تعجب نکنید چون همه ی عالم ها امام امن حجر را ببینید بیش از هزار شیخ داشت امام امن تیمیه میبینید امام امن قیل میبینید از مخالف و موافق هزار و سیسر تا فقط شیوخ امام زهوی هست امام ده همی خب از همون بچه که از ده سالگی شروع میکنه به علم حدیث شروع میکنه به خوندن کتاب در نظر امش میاد در نظر امش سحی بفاری رو میکنه کنه احناد می گیره سحی مستقیه موقع روغه ده سالگی، تیزه سالگی، چهار ده, ده, ده سالگی می آدم این کتاب هایی که هست سحی بفاری سحی مستقیه این صنده دیگه قبلا بوده شخص بیاد کتاب رو فقط بخونه پیش یک امام اصلا اون بچگی همینطور کلا ما مکتب کنه داریم که بچه میاد قران میخونه صحیح بخاری هم باید بخونه صحیح مسلم هم باید میخونه الان خیلی از شیخا مون از ما میبینید اسم عالمو دارن ولی یک حدیثو میگه در صحیح مسلم نیکه نمیشناسن یعنی خیلی جاه خاص مثلا ترجمه میکنه یه جایی مثلا میبینه یک حدیثو میبینه اصلا به خطور نمیکنه که حدیث ال بخاری مسلم باشه چاد تا این بالا به ما هم رخ داده باشه تعجب می کنیم پدیده در سایه مسلم علی ما نفته حالا جاهایی از فراموشی جاهایی از عدم اطلاع فن نمی تونه مطالبه بکنه اهمیت نمیده حالا خصوصا ما اگر در قرن 7 نبگاو کنیم والله الحمدلله چند سالی هست که دوباره علم حدیث داره زنده میشه و خیلی والا ما دارن دنبال برسی احادیث و فهم احادیث دیگه قبل از این میبینیم همون اقناع همون ابسجا و علی که توه به تو تیوار به طور خلاصه فقط عبور می کردن و بر همون اساس به مردم صفح می دادن خب امام زهبی طلب علمش ده. به طور سنگین حالا به طور که اسمش بذاریم طلب علم از ایجه ده سالی که آغاز شده خود طلب علمش حالا ببتیم به طور سنگینش اعتقاف بر روی کتاب های حدیثی و غیره از ایج ده سالگیش آغاز شده بعد تجرات میکنه میره از این همه ده سالگیش تا بست سالگیش از اون علمایی که در تمرشتونه میره در فلسطین در حلب و غیر میره در تمام این شهرها پیش علما تک به تک میکنه تا اینکه توفیق پیدا میکنه میره به مکلوب و مدینه و غیر و میره پیش علمایی دیگه میشینه و انو حدیث را ر خود علامه زهبی جز تلامیز متهمیه هست میبینیم که در اعتقاد اعتقاد سلف رو داره در بحث از محصفات کتاب علو رو میمیسه در رد اشاعره و منتظله میاد بحث علو رو تایید میکنه هرچنکه ما میبینیم یه نکاتی هست یک بعضت مسائل هست در ما رو میبینیم که خود امام زهبی نقم میکنه جوهای متهمیه لیکن میبینیم که در بیش از پنج مصنف یا چهار مصنف امام ذهبی م حش خنا میان رو میکنه. کتاب تطیات فف کتاب سرران نمبلات تاریخ کبیر و خیرت کتاب ها که یاد از تون میاد میگه وال محب وال کدهده و علم کبیر وال کده و کده خیلی زیات مش میکنه. بعضی ها تفکان مقرانه در تین سر کتابی رو آوردن که اوسی حالا معرو در ردش بر آلبانی میاد کتابی را از قول خودش کتابی را نسبت میده به امام ذهبی در نصیحت شیخ نام متمیه میاد این کتاب را چاپ میکنه که در این کتاب یه نوع بدگویی از ذهبی هست به که نمیدونم دوره بره مشتلات و لات جمع کردی و فلان و که گام گام ازش از اینو بیشتره و فلان این الفاظی که اصلا امام ذهبی در درحقیقا اصلا استفاده نمیکنه امام ذهبی کلامش معروفه ادب احترام اگر جرح میکنه با دلیل و مدرک این کتابی که برای اصلوب عدب امام زهبی درش نیست خب میمونه در چه فنی مشهور بوده خود امام زهبی در چه فنی دست به قلم بوده خب اون چیزی که هست امام ذهبی بیش از دویست تا تصنیف داشته دیویسو دیویسو کتابنویس مشخص است کتاب کتابنویسه کتاب که یک کتابش مثلا تاریخ کبیره که میشه از 60 جلد یا سیاره سیاره عالم نبلات که 32 جلده یا میزان و اعتدال یا کتاب کتابفاظه که 4 جلد کتاباش دیوال از 4 جلدی گرفته یا 20 جلدی باش 60 جلدی که همه اینا یک لو کتاب حساب میان از 200 تا کتاب و 200 جلدی کتابی که امام ذهبی داره معروف بودمون به ترتیب نوشتند معروف بوده هم به حفظش و هم به نوشتن امام ذهبی در چهار علم معروف بودن یکی علم قراءات علم قراءات در دهت قراءات. ده هر دهت قراءاتی هر چه قراءات اثنال داشته تا جایی که موزههی میگه که میگه این همه زحمت کشیده در علم قراءات دیدمش که دریافت دیدمش که دریاس کسی بره توش ضرفم میشه دیگه نمیتونه به جای دیگه برسه. حویچ که نفس زیاد میبره جهدی بسیار میبره لیک لییک سرشکن یک اقیانستسی میری ماهی گیری میکنی که ماهی درک ماهی درشت خب این هل مقرات خونددی به در چید میخوره وقتی که تثیر رو نکنه وقتی که حدیث رو نفهمی که که شاره هست هم زل لهق و له تووب نه وقتی که موبایل نه شو نداری قرآت همینجوری مثل چوتی داری می کنیم کمکل الحمار یحمن و اسفارا مثل اولاق نقضی که خداوند بر یهود بی کنه مثل اولاق باری روز روش گرفت آخر خودش هم هیچ سودی نمی بره هیچی نتیب امیت نتیبش نمی شی چشکیدن به علمه قرآت فرش. قرآت پرش نمیدن فلان فلان فلان خوندن آخر دست خالی برگشتن میخوره؟ چی می کنه رده که؟ امام ذهبی میگه که المی بسیار بزرگ دیگه سمراش و فایدهش خیلی کمه به نسبت بزرگیش فایده اش خیلی کمه به خاطر همین مثیر علمیش رو عوض میکنه میاد در خط حدیثی میاد در خط خط حدث حدیثی میاد در خط شرح حدیث ثقه حدیث میاد در بحث مصطلحی حدیث در علم الرجان میاد کتاب های رو می نویسه تاریخ کبیر رو می نویسه تذکر الانور رو می نویسه تفسیرات الفاضل می نویسه همین کتاب موقتده در موصلح حدیث را می نویسه کتاب های زیاده در بحث حدیثی می نویسه حنه از جمع علومی که بهش معروف بودن امام الزهبی علم فقه علم فقه مشهور بودن و خیلی زیاد فقه های مقلد را نقد میکنه کنن هایی که از حدیث بدورن نقد میکنه کنن از جمع علومی هم که بهش معروفن علم تاریخ برمیگرده از حکمتی از اون برمیگرده به همون بحث حدیثی. یکی که کتابی که نوشته تاریخ اسلام که گفتیم نزدیک به 60 جله یا بیشترش در جله خوده کتاب تاریخ اسلامش از صدر از حالا همون زمان رسول الله صلی الله علیه و گرفته تا سال 700. 700 سال از تاریخ اسلام را در این کتابش آورده. چی شد؟ کجا رفتن؟ کجا اومدن؟ همین بحث تاریخی رو در این کتاب تاریخ اسلامش آورده ин чорпа илми ки имам захаби ба он маруф аст сафоло мегӯнад кутобиш ал-муқаддима нибасмиллаҳир-роҳманир-роҳим вас-салату ват-саламу аля муҳаммадин ва алиҳи ва саҳбиҳи робби забни алман ва ваффиқни акрим ин که یک از سنت های مصطفى صزی اللہ علیه وسلم نام نه مینویثه به هرق نومن و میمیثه به شام ابل با به اسم الله جل شکنه آغاز میکنه به اسم به اسم تو این خدا استعانت می به اسم تو این کتاب را آغاز میکنم این نوشته را آغاز میکنم طلب عونه طلب کمک از خدا طلب برکت از خدا که این علمی که نوشته میشه این نامی که نوشته میشه درش برکت بیفته ба мо таса кани бибину ки лат кахона خود خد... خد... نه الان ما یک کتابی را به ما مثال بزنید که مثلا خطبه حاجت باشه بسم الله باشه چون بحث کتاب و نامه این سنتی که بوده که هر صحیح کتاب صحیح بخاری رو ببینید این بسم الله روش هست یا بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله معمولا بسم الله هست الان هرچنکه برده خطبه حاجت هست الان برد خطبه خوندن بحث جدا است یک ایک سفرانونی یک خطبه لازمید که بسم الله باشه амун алҳамдулиллаҳ анҳамду ва настаъин ва настағфир лекин дар баҳти китобати маъмулан дарш бисмиллаҳ аст як сунна сунна мустафа ва исм суннаи набавист дар бадаёии китобҳо маъмулан муҳаддисин ниҷат роҳият мекарданд бисмиллаҳро меӯрданд ва ин чизест ки баяд бешад яъни хуз ма дар номаи паёми паёми муҳташаби мебинем бисмиллаҳ اسم الله تعالی شنوا شروع میکنه و الرحمن الرحیم و الصلاه محمد و اله و رب زدنی علما و فقه کریم و بعد الصلاه و السلام که واضحه بر محمد و محمد و صحابه مکرمش بعد میگه رب زدنی علما انسان کلم از رب زدنی علما رب زدنی علما در این گفته چدار قر قرآن هم ده خطاب به خود مصطفی الله عليه و سنت و قر رب زدنی علم این قسمت از علم این قسمت به علم چرا الله از از دستور به رسول ما هست خدایان بخوا علم نفتش علم مکانیکی علم مهندسی چه علم فقرب زدنی علم علمی که بحثیه از قرآن و سنت به قدر همینی که میگه چی وقا اوتیتو من العلم إلا قلیل علمی که به شماراتی دیالا از این علومی که دارید خیلی کمه علم وقتی که در شعر بحثش میشه در قرآن و سنت بحثش میشه علم همون قرآن و سنت خب میگه و وقت و طلب توفیق میکنه از خدا این خود کلمه این دعا در این مقدمه در ذیک آیه شده، یعنی خودش مستصفا گیر بر گرفته شده از آیه قرآن خداون در قرآن چی میگه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین علم وسیله ای برای اصلاح چیه عمل ایاک نعبد وسیله ای برای اصلاح عبادته مقابل همین گفتارت هست یعنی رب زدنی علم چون جای علم ما عملم درست نمیشه دیگه نمیتونی این یا این نعبودو رو درست بکنی. این عبادتی که از خدا میگی به خدا که من فقط برای تو عبادت میکنم و فقط تو را میپرستم. این چیزی که ادعایی که دارید این ادعایت حقیقی نیست اگر علم حقیقی نباشه اگر علم درست نباشه. پس علم باید درست باشه. بایدت خدا من هم تو اون عبادت درست بشه. تا این ادعایت و این طلب در نمازه این طلب حقیقی باشه طلب درست باشه ایا که نعبو و ایا و ایا که در این جمله امروزهبین مفتنه هفته شده و وقت فق یا کریمینی خداوند توفیق عمل بده بس از خداوند علم را میخواهیم علمی که توفیق بده که ما عمل من را درست بکنیم و توفیقی میخواهیم که بتونیم عمل بکنی قال شیخ الإمام العلامه العالم العلامه الرحله المحقق قال شیخ علی مقدمه کتاب بو اسنادش رو نقد کرده میگه الان اینجا بو این گفته قال شیخ الامام العلامه الرحلة الرحله کسی که بسویش رحلت میشه السلام المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عند الحفاظ والمحدثين انا داري الجمله بعد الناسخ نقل بشه عند الحفاظ والمحدثين وحدة الائمه والمحققين عند هر مؤمني توكل بقدره عند اي وجه اعتماد بشه قد ما نقول يتوكل على الله فهو وحده ومن يتوكل على الله او ح کسی که بر خودداته و کل بکنه اون چیز برش کافیه پس اون چیزی که ما را کفایت میکنه مزحی نیست مزذهبی تنها چیزی نیست که ما میتونیم روش اعتماد بکنه اون چیزی که باید روش اعتماد ب و کل خداست خداونده که باید بهشته و کل بکنیم و بهش اعتماد بکنین وعددهطول محده از عده و اون چیزی که آماده میشیم براش به جنگ و به نبرد و اون چیزی که آمادگی مورد میرسونه و عده الائمه ائمه المحققین اون چیزی که ائمه را ائمه محقق را آماده سازی میکنه بعضن جای نقد چون اون چیزی که ائمه را ائمه را می سازه و اون چیزی که ائمه باز بهش مجهد بشن ابن امام ذهبی نیست و قندون کتاب های امام ذهبی نیست بلکه اون چیزی که ما رو آماده می ساده چییه؟ و تقص وتذب فن ناخير الزاده التقوا بهترین زاد توشه چون روده توشه هست زاده اون چیزی که مجاهدیم و خودشون آمماده ساده میکنن. وتذب و فن ناخير الزادی التق. پس حالا این یک شااطقلوب درش باشه هم تلف فادلعلم همین ما اینجا را پروانس گذاشتیم و گفتیم. که Rad ما 순 sch Adultryli её cspparisk ли Issan lart is ranish news. Issan lart is ranish. faults. feelings. Somebody said,Uri ss tiff cani so,Sh Samus d incident. There is a sign. Ιn invention. What should I say to him, An mand Does he have an oui, そ till ch ونفعنا, ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين قال النوع الأول الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشدود والعلة وفيه نظر على مخفض نظل الفقهاء فإن كثيرا من العلم من العلل يأبونها. خب. إمام عراقي إن قفتي إمام ابن الظلاح. فلنجم خلاصية قفتي خلاصية خلاصية ابن الزخيفة. خلاصية خلاصية كتاب إمام ابن الظلاح. إن تاريخ حديث سهيرة دار إن دو تطبيت خلاص تشمك من إمام عراقي. فالأول المتصل الإثنادي. فالأول يعني قبل نويل المتصل الاسنادي بنقل بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤدي هو ما دار على عدل متقن قبل شذوذش بريرده براويان خديس بعد الراوي عادل باشه ومتقن باشه این شرت رابی بقیه شخصط ها ب و فللا سند سع باد مستفل باشه ف اینکه مور س نففل احتجاج دی اختلاف در بح اختلاف یا اگر م موررس حلیث صحيیح ح سرش اختلافه در نازفخها ها چون بعض سوقه ها مثل منشرافلی مت میری من من مرتلا سعییر مونس ای را قبول دارن پس در نزش حلیث مرسلی کهشر خاصی داشته می تدید د شحت صحیح باشه میگه در بحث ادتاله اسناد اختلافه خصوصا در نوعی چی در مرسلش که درش نوع انقطاع بین تابعین و بین رسول الله و زاد اهل حدیث اگر بحث خلاف این سفر میات اهل حدیث سلامته من الشذوذ و العله و اهل حدیث این دو کردن авн шаз набошад ва ба ман маълул набошад шаз яъни ки сақи наяз мухолифат мекунад бо касе ки аз ус сақатра ё маҷмуи асқа тало бадам шарфаш меяд вале ҳолоан фақат ба ном назид кардани фаҳмш шаз мухолифат сақа як сақа бияд бо касе ки сақатра аз худша ё маҷмуи асқа дар ҳамон ҳадис мухолифат мекунад ин чӣ мегӯяд шумоз куда калимаи шумоз аз мухолифат меяд ва ла اكس سبب تاریکی هست در پنهانی از در حدیث که در صحت ان حدیث قد وارد میکنه اشکال وارد میکنه سبب میشه اون حدیث ضعیف بشه و این دو تا قاعده و این دو تا شرطی که علمای حدیث گذاشتن میگن که دیگه امام ابن کثیر میگن میگه که در نزد ها مورد نقد چون خیلی از علما رو قبول ندارن حالا ما این شرط و شروط رو بازش بکنیم بازش بکنیم این که کافیه تنجا وقت خب ما را ما این شرح را با این جمله آغاز می با این جمله ای که امام عراقی می گه فالاولون مختصر چون با این بیت میتونیم تعریف رو فقط بکنیم چون بخوام این جملات رو حفظ کنم خیلی برای ما سنگینه کافیه این به تعریف فالاول مولتصل الاسنادی وقتی که یک محدث میگه یک سند باید متصل باشه بس مرسل نباد باشه بعد از محدثی بعد از طوقا اول راه مرسل نباد باشه یک در نو دو تا راوی هم دیگه ملاقات نکرده باشه دو تا راوی بینشون زمانی باشه که با هم دیگه ملاقات بکنه منقطع نباشه معزل نباشه دو تا راوی هم اگه قد بشه میشه چی معزل درسته معلق نباشه از اول اثر مورد از بالای اسناد از جهت صحابی صحابی نیست درست نه میگه از اخلاق گفته معلق از جهت مصنف مثلا امام بخاری بیاد اسنادی کسی که از رو شنیده رو حد بکنه حالا چی یکی چه دوتا تا بیاد میگه فلان گفته که را صداش اینی گفته یا فلان کس فلان شنیده که را صداش اینی گفته سندش رو نمیگه این معلقه آویزان است اسناد نداره این میگن بهش معلق پس این شو دستی حالا مدلت هم بهش بعضی اضافه میکنن که خودش در ضمن بحث منقطع بیاد خود بحث مدلت شو که تدلیس میکنه خود به خود راوی را حد کرد پس حدید با متصل باشه یعنی به نب مرس باشه ن مقطه باشه ن مزل باشه پس اینا ن باشه اگر این اوصفف داشته باشه ح او والل متصلول اسناری به نقل عاده اولینشاری که باید یک رابی داشته باشه ادالت او ادالت چیه و رابی عادل کیه العداله هو ملكه تحمل الراوي العداله هو ملكه الاداله هي ملكه تحمل الراوي على تقوى الله ومجالبه الفسق وخوارم المروءه حالا این چیزی که ما میتونیم جمهندی بکنیم این خلاصه اون حرفی که در برای عدالت زده شده یک ملکیه یک چیزیه یک شخصیتیه که در یک رابیت هست که شامل تقوای خداونده که این تقوا در اسطلاح شرعی از وقایه گرفته شده پرده پردهیه حجابیه بین ما و خشم خداوند و عذاب خداوند وقتی که میگیم استغفر الله یعنی چی یعنی بین خودت و خشم خداوند پرده ای بذاری بنده وقتی که انسان سردشویی پوششی می که سر سرما نخوره بقای تقوا از وقایه گرفته شده ما خودمون رو وقایت بکنیم از خشم اسباب خشم خداوند پس لازمه اینه که یک راوی عدالت داشته باشه لازمه این چیه که گناه انجام نده تخوای خدا رو پیشه بگیره و از اسباب فس و خواهاره به مراد زور بشه الان اسباب فس چیه؟ اولا گناه های کبیره انجام نده فس دیگه موسیقی گوش دادن گناه های کبیره نمیدونم درو گفتن گناه های کبیره غیبت گناه های کبیره همین هم های کبیره و یا برگناه های سغیره اصرار نورده برگناه های سغیره اصرار نورده حرفی بیویده زدن و خنده بیجا زدن و حالا هر گناه های سغیری که میدونید پس چه فرانه باید انجام بده پس علمای حدیث خیلی اهمیت دادن به بخش عدالت اگر یک راوی پاش بلرزه ازش قبول نمی کردن یه کمی گناه بکنه یه کمی خلاق بس خیلی دقت داشتن در بحث حدیث بخاطر برطرهایی می‌بینیم که علمای حدیث و اهل حدیث از ها متفکرند فقها ریششون اون کیه نمی‌دونن که راهنشون بلند اسبال در زمین در میکشنه کشن کشان لیکن موادر در زمان قدیم نگاه فقهای قدیم امام شافعی که خودش فقیه و خودش محدث در طرفی که یک راوی که نه یک شاهد یه شاهد میاد شهادت بده شاهد برای عقض ازدواج شاهد رو برای فلانکت دوزی کرده شرط و شدود دارن اطبال نباشه نمیدونم ریشاشو تیغ نزده باشه کتاه نکرده باشه فلان نکرده باشه فکر نکنید که فقط محدثین این شرط و شدود دار. حتی فقه ها در کتابی فقه ها. مثل ما ببینیم این شرط و شدود هم هم پس تو تحریفش چیزی که انسان را بر تقوی خدا پا بر بکنه و از اسباب فرد و خواره مروعت گیر بکنه نه خواره مروعت چیه خواره مروعت خوارم از خارم و سکننده میاد اون چیزی که یه چیزی رو خورد بکنه مروعت, مروعت یا مروعت شخصیته شخصیت یه ک Rabi عاد رخت بکنه، یه تعالم رخت بکنه. حالا چی شخصیت ما رو خورد میکنه؟ شخصیت ما رو لباسش. به فرض من بیام با کت و شلوار یا با کراوات، شخصیت من خورد میشه. یا برم در کوچه خیابان، بغل سوپرمارکت بیام، باتنی و بابل دارن، ببینم. یا برم ساندویچ فروشی، ساندویچو ببردارم، با یک دیشاب بزنم، بخورم. زشت هست یا یعنی در شخصیت یک راوی حدیث یک عالم حدیث نیست که بره در کچه و خیابون ساندویش بخوره زشته یعنی خودت خودت بکنی تو کلاس به بچه ها بعضی مثال ها زنم خودشون خنده شنو من اتعجب کردن مثلا بالفرد سیگار سبحان و صدقه رسول از الاسم و حقه فالنف فالنفت و کردت این صلع علیه انسان اگر نه فکر نکند باشه دشتی رو میگه گناه فیت اشیت بده آیا من رو میشه سیگارو بدارم که مردم سیگار بکشم این گناهه گناه کبیره سیگارو بازه سیگار بکشن الاسم وحکف الناس و کرهت ان يطلع يطلع علیه الناس البته ده یک بره یک بره من انجام ددی که عادی میشه اصلا حالا من این سیگارو بر ندارم میام یک قلمی میآورم تو دهنم میذارم بزرنم پود بکنم به هوا. دارم قیافه میرم مثلا به یک سیگار. خوار مورد. شخصیت هم را, را خورد می کنم. تمثیل بازی و نمی دونم بازی و نمیدونم مردم را به خنده در آوردن. این جزر خوار مورد. شخصیت را خود را خورد میکنه کنیم. این چیز مهمیه که باید طلبه بزنه. این چه چیزی؟ یک حیبت به میده می ده. حیبت علمی، حیبت اسلامی. شخصیت اسلامی ببینید. متاسفانه این شخصیت الان از بین رسته یعنی یک شخصیت حدیثی که الان ما تصورش بکنیم امام زهبی در اون ببینیم یا امام حجر یا محدثین بباری مسلم درش بینیم. این شخصیت رو دارد به نوکورتون بیار چه شخصیت روی بودن شکه داریش این شخصیت روی ای که ما داریم از عالم و جاهلش این شخصیت رو نیستن خب این شد یک مسلمانه یک بالغه بالغ و یک مکلف مسلمانه بالغ و عاقل مسلمان بالغ و عاقل که از اسباب فطر و خوام مروات به دوره اسباب فطر و خوام مروات به دوره یعنی نفس فطرت و نه نهم بشخصیت بمروات این را بیا حاصل мини ба шарт баъди пас ин шуд ададат шарт баъди мутқан гуф муаллифи китоб мо мегем зобит зат зат он ал ҳад ҳад шуда як маъни дига зобит нуба барои баҳта ҳдадат масалан барои он масал як یک از ائمه من فکر کنم بخاری باشه یک از ائمه من پیش یک از نماهای حدیث یک حدیث رو میگه میگه پیراهنش به بلا وارد در حیوانش درو میگه بیا چه کیان یا علتی توی پیراهنش داره میگه اگه دیگه تو این همه رو مزافت ما دیگه این چرا نگرفی میگه دیدم که به حیوان درو گفت که به حیوان درو میاد کجا منو کسی رسول الله درو نبانده این بحث شناخت رویان عطل از غیر عدل این خطه این تحریه علمان اگر درش بار بشه خیلی تونانی میشه یعنی بحث عدالت خودش بار. چقدر علمان در بحث عدالت در قد داشتن در حیعت شرق شکل شرق عدای شرق سخن شرق رفتارش بخنو عدهش رفتارش بفرزندش خیلی در قد داشتن خب به بل دومی مطلب ضبط یا ایک بار ضبط یکی ضبط صدر یا سینه و ضبط دون ضبط کتابت ضبط سینه باید حضرش همیشه مراجعه بکنه دور بکنه شرطش بلوطی بروای خودش تا ضبط کتاب هم همچینین باید یاد نوشتاش مرتب بنویسه فلان بنویسه در کتاب های که با کتاب های دیگه قاسی نشه فلان نشه و و لم امتحنوا مشدان در بحث ضبطشون خودمان بخوای وقتی که ما به وقت دوون کاری که کردن احادیث مقلوب رو بردن احادیث رو اشنادی رو به عرفون دیگری گذاشتند امتحانش کردن که ببینن آیا ضبط داره یا نداره این قصه حال بیاد قصه ابن ماین واحنا حابه که شنیدی تو كنا في اعماله مودا برای گرفتن حدیث یحیی بن معین گفت كمان واحنا گفتم گفت گفت که من میخوام عمش امتحان بکنه امتحانش رو که نمروز ببینم که واقعا حفظ افتقاندارینه میگه احمد این کارو نکنه احمد بهش گفت ابن معین کارو نکنه گفت ابن معین عالم از صدر قبل امامه خیلی دقیق بوده امتحان می‌کرده همیشه حتی یک امام مثل عمش که حافظه دوباره یاد میره روی یک تقریر احمد الحمال ف یحل ابن اون خادم می سنن رو خادم شده لازم نقل می کنه اصلا میه جلوی احمد می نشینه خب احمد میاد یحیی بن میاد 10 تا حدیث مییره میاد اساسی خود احمد میگه تو گفتی فلان فلان فنان نه عدی درست میگه آخری اسناد عوض میکنه اسناد میگه یه مت دیگه روش میزاره میگه هذا ليس من حديثي این حدیث من نیست اصلا نمیشه میگه این حدیث من نیست خب ده تا دیگه تو هنلوشی ده تا حدیث نوشه میاد این بازم همون کار رو تکرار میکنه در یکی از احادیث بازم میاد امتحانش میکنه در حبت یکی احادیث استادش عوض میکنه میگه اینم بازم حدیث من نیست سوی این بار میگه تو احمد محمد قصام میدنه بحثم حمدت تفسر راستش نشسته میگه تو بالاتر از اینی که اینجاین کاری بکنی و تو کوچک از اینی این خادرشگه تو کوچیک از این که این کار رو بگذارید هر بل هست داره از هم اونجا لغتی میزنه بهگهیاب معین از همونجا ق تک میخوره و پوش میفته پس محل تزانششک میکنه دیگهگه ننگفتم به این کارو نکن گفت که به خودم این لغتش خیلی به من ارزش داره خیلی بهم عرضش داره این لغتی که از این برخورده که با هم, با هم کرد خیلی به هم ارزر حداقل من تونم حفظش رو بدونم، اتخانش رو بدونم، امتحانی هستی می کردن. برای این میدونم خفاظ می که چقدر حفظ دارن، چقدر حفظ ندارن. این بحث اتخان. بحث شزوزش رو بحث علتش انشالله می کنه برای یه درسای آینده. تسیل سوال چیزی داره؟ در این مباحثی که خونده شد، در این گفته شد. انشالله، در соиنده инвид савол мешида فالاول المتصل الاسنادی من نقل عدنه ضابط الفوادی عن مثله من غیر ما شذودي وعله قادحه فتؤدي احمد اش коре чидас мозал вақти ки ду тарави педарги پوشا сархам дар як اگر در یک جا نباشن در دو جای ها مختلف باشن میشه منقطعه. اما اگر دو تراغی پشتر هم باشه در اثنات. دو تراغی پشتر هم قد بشه بهش میدون موازه. بله. دو جای در اثنات دو تراغی هم پشتر هم بشه.